در مسجد اگرچه با نیاز آمده هم. حقا که نه از بحرنم نماز آمدهام روزی اینجا و سجاده ای دوزیدم، آن کهنه شده است، باز باز آمده هم. دیگر غم این گردش گردون نخوریم، جز باده ناب صاف گلگون نخوریم، می خون جهانست و جهان خونی ما، ما خونه دلی، خونی خود چون نخوریم. در عشق تو صد گون ملامت بکشم، بر بشکنم این عهد قرامت بکشم، گر عمر وفا کند جفاهای تو را، باری کم از آن کتاب قیامت بکشم. در دایره بوجود دیر آمده ایم، و از مردمی به زیر آمده ایم، چون عمر نبر مراد ما میگذرد اکاش سر که سیر آمده ایم.